به نام خدا کتاب افسانه های آفریقایی بچهای کوزهی نویسنده کتلین آرنوت ترجمه رزوان دسفودی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا آبدی. داستان بچه های در دهکدهی در دامنه کوههای بلند یه زن تنهایی زندگی میکرد شوهرش سالها پیش مرده بود و بچه هم برای اون باقی نزاشته بود زن سالای پیریش رو در سختی و تنهایی میگذرند و همیشه دلش پر از غم و قصه بود تو تمام این سالها اون هر روز خونش و جارو میزد از رودخونه آب میورد از جنگل هیزوم می و تو تنهایی غذاش رو میخورد اون زمین بزرگی داشت که توش سبزی میکششت و موز پرورش میداد به خاطر همین بیشتر وقتش رو با کندن علفا و بیل زدن زمین پر می کرد. زن همیشه آرزو می کرد که کاش فرزندانی داشت تا در کارها به اون کمک کنن. زنای یه که تو اون ده کرده زندگی می از اون خوششون نمی اومد. هر وقت اونو که از کار خسته شده بود میدیدن مسخرش میکردن و می اون حتما زن بدیه که خدا فرزندی بهش نداده. تو اون قسمت آفریقا جایی که این داستان در اونجا اتفاق افتاد اعتقاد مردم این بود که خداوند روی قله کوههای بلند زندگی میکنه برای همین صبحهای زود و شبا به طرف کوه ها نگاه میکردن و دست به دعا میبردند زن تنها هم همین کار رو میکرد اون هر روز از خدا میخواست که براش کمکی بفرسته اون اونقدر دعا کرد و دعا کرد تا خدا بالاخره به دعاهاش جواب داد. یهرو زن چند تا دونه کدو تو مزرش کاشت. چیزی نگزش که فهمید بوته هاش خیلی سرحالن و هر روز بزرگ و بزرگکر میشند. وقتی از خواب بیدار میشد دهنش از تعجب باز میموند چون میدید که بوته ها کلی بزرگتر شدن. چیزی نگذشت که گلای کدو تبدیل به میوه شدن زن هر روز با دقت علفای هرس رو میکند خوب میدونست که به زودی میتونه کدوها رو بچینه و خوشکشون کنه و تو بازار بفروشه مردم از این کدوها به جای کوزه و ملاقه استفاده میکردن یه روز وقتی زن مشغول بیر زدن بود ناگهان قریبه ای رو کنار خودش دید. اون خیلی تعجب کرد چون صدای پای کسی رو نشنیده بود. قریبه مردی زیبا و بلند قد بود. اون لبخندی زد و به زن گفت من از طرف خدایی که تو کوه ها سومدم تا به تو مجده بدم. ای زن، دعاهات به گوش خداوند رسیده. از این کدوها خوب مراقبت کن. خدا با این کدوها خوشبختی رو به تو هدیه خواهد کرد مرد همونطور که ناگهانی اومده بود ناگهانی هم غیب شد زن که دهنش از تعجب باز مونده بود به این ماجرا فکر کرد میدونست که این چیزها رو خواب ندیده از اون روز به بعد زن سختتر از قبل تو مزرعه کار کرد پیش خودش فکر میکرد که این کدوها از چرای میتونن اونو خوشبخت کنن. یکی دو هفته بعد کدوها آماده برداشت شدند. زن با دقت اونا رو از بوته جدا کرد و به خونه برد. بعد گوشت داخلشون رو خالی کرد و گذاشت روی تاخچه تا خشک بشن. بین کدوها کدویی بود که از بقیه خیلی بهتر بود. زن اون رو کنار اجاق گذاشت. به این امید که زودتر از کدوهای دیگه خشک بشه و خودش از اون استفاده کنه. فردای اون روز صبح زود زن به مزرعه رفت تا علفای دور درختای موز رو از ریشه در بیاره وقتی اون تو خونه نبود، مرد قاصد به خونش اومد. مرد دستش روی کدوی کنار آتیش گذاشت و اونو تبدیل به یه پسر جوانی کرد. بعد دستش رو به کدوهای دیگه زد و هر کدوم از اونها رو تبدیل به یه بچه کرد. وقتی قاصد ناپدید شد، خونه پر از بچههایی بود که می کتیت، برادر بزرگ، ما رو بیار پایین. با این صداها پسری که دمه آتیش نشسته بود، بلند شد و به بچه های دیگه کمک کرد تا از بالا یه تاخچه پایین بیان. هیچ کس تو دهکده نمیدونست که چه اتفاقی تو اون خونه افتاده بچه ها هر کدوم شادی کنون به طرفی رفتن یکی جارو رو برداشت و خونه رو جارو کرد اونی یکی علفه رو کند و به مرغا هم غذا داد دو نفرشون از رودخونه آب رو و ظرف آبی رو که بیرون در بود پر از آب کردن بچه های به جنگل رفتن و یه دسته بزرگ هیزومو فردن فقط کتیت بود که هیچ کاری نمیکرد. اون پسر باهوشی نبود و کارش این بود که تمام مدت گوشهی بشینه و ساده لبخند بزنه و به حرفهای دیگران گوش کنه وقتی تموم کارای خونه تموم شد بچه ها دوباره فریاد زدن کتیت کتیت دوباره ما رو بذار بالا کتی که بزرگترین بچه بود، اونها رو بالای تیرهای چوبی اتاق گذاشت. همه دوباره تبدیل به کدو شدن. کتی هم سر نشست و دوباره تبدیل به کدو شد. زن آروم آروم در حالی که پشت ای از علف های رو روی پشتش گذاشته بود، به طرف خونش برگشت. میخواست با اون الفا سقف خونش رو تعمیر کنه. وقتی چشمش به داخل اتاق افتاد از خوشحالی فریاد کشید با عجله تمام گوش کنارهای خونه رو گشت تا ببینه چه کسی همه این کارها رو انجام داده اما هرچی گشت هیچ کسی رو پیدا نکرد به خونه همسایه ها رفت و به اونها گفت کسی تمام کار ما انجام داده شما نمیدونید چه کسی این کارها رو کرده؟ همسایه ها جواب دادن یه بچه رو دیدیم که اطراف خونت این طرف و اون طرف می رفتن. ما فکر کردیم از فامیلای تو هستن. به خاطر همین چیزی نپرسیدیم. زن به خونه اومد و مشغول پختن شام شد. اون حیران مونده بود که چه کسی تموم این کارها رو انجام داده. ناگهان به یاد حرف قاسد افتاد که به اون گفته بود اگه از کدوها به خوبی مراقبت کنی خدا با اونها تو رو خوشبخت میکنه. با این فکر زن از خودش پرسید این همون خوشبختیه روز بعد ماجرا تکرار شد ها از کتید خواستند تا اونا رو از بالای تیرک های اتاق پایین بیاره اونا دوباره تمام روز رو کار کردند سقف خونه رو هم با آلفایی که زن آورده بود تعمیر کردند تعدادی از همسایه ها با شنیدن صدای بچه ها آروم از خونه هاشون بیرون اومدن اونا بچه ها رو دیدن که مشغول کار بودن. بعدم هم دیدن که بچه ها داخل کل رفتن و دیگه صدای از اونها شنیده نشد. وقتی زن دوباره به خونه اومد دید که امدادگرای قیبی تمام کارا را انجام دادن. از خونه بیرون رفت و رو به کوه کوهایی ایستاد و از خدا تشکر کرد. اما هنوز نمیدونست دونست که جریان از چه قراره. بچه های کدویی، هیچ ردی از خودشون باقی نذاشته بودن. همسایه ها روز به روز بیشتر کنجکاف می شدند. برای همین فردای اون روز وقتی زن به مزرعه رفت یواشکی به خونه اون اومدن و از پشت پنجره داخل کلور رو نگاه کردند. ناگهان دیدن که کدوی دم اجاق تبدیل به یه پسر شد. بعد صداهای شنیدن که تیت برادر بزرگ ما رو بیار پایین. زنا با دیدن این صحنه با دهانهایی که از تعجب بازمونده بود دویدن و از اونجا رفتن. اون شب وقتی زن به خونه برگشت همه ی همسایه ها منتظرش بودن تا ماجرا رو از اول براش تعریف کنن. وقتی زن حرفای اونها رو شنید تصمیم گرفت که خودش ببینه اصل ماجرا چیه؟ فردوی اون روز زن طوری نشون داد که انگار میخواد به مزرعه بره اما کمی که رفت راهش رو کچ کرد و به طرف خونه رفت میخواست از نزدیک ببینه که تو خونش چه اتفاقایی میفته بچه ها مثل همیشه بلافاصله فاصله به طرف بیرون خونه دویدن ناگهان چشمشون به زن افتاد که شگفت زده اونها رو نگاه میکرد اون به بچه ها گفت پس شما همون بچه هایی هستید که به من کمک میکنید؟ از شما متشکرم. اونا حرفی نزدن و مثل همیشه کار روزانشون رو شروع کردند. فقط کتید بود که بیکار گوشه نشسته بود. وقتی کار تموم شد دوباره بچه ها از کتید خواستن اونها رو روی تاخچه بذاره. اما زن به اونها اجازه نداد که برن و به اونا گفت حالا شما بچه های من هستید. نمیخوام دوباره تبدیل به کدو بشید. من برای شما قضا میپزم. شبم همه روی زمین میخوابیم. از اون روز به بعد زن بچه ها رو پیش خودش نگهداشت. داشت. بچه ها تو کارهای خونه و مزرعه به اون کمک میکردند. چیزی نکزشت که زن سروتمند شد. تونه سبزی ها، موز ها, و بوزهاش رو به کمک بچه پرورش بده و بفروشه. فقط کتیت بود که تمام روز کنور آتیش میشست و با چوبایی که برادر و خواهرش به خونه اوورده بودند آتیش رو روشن نگه میاشت. مدت ها گذشت، بچه ها بزرگ و بزرگتر شدند. تو این مدت زن همیشه خدا رو شکر می کرد. اما وقتی ثروت زن خیلی زیاد شد بنای بهانهگیری از کتیت رو گذاشت. اون همیشه کتیت رو به خاطر شلول بودنش مسخره کرد. یه روز وقتی زن وارد خونه شد، کتیت رو که کنار آتیش دراز کشیده بود ندید. پاش به اون گیر کرد و به زمین افتاد. دیگی که داشت تو شام میپخت افتاد و غذاها روی زمین ریخت. دیگه گلی هم شکست. زن با عصبانیت از جا بلند شد و در حالی که غذاها را از صورتش پاک می کرد گفت ای موجود شل بیکار. چند بار به تو گفتم که جلوی پا نخواب. از بچهی مثل تو انتظار بیشتریم نمی داشت. تو یه کدوی احمقی. زن صداش رو جوری بلا برده بود که بچه های دیگه هم صداش رو شنیدن. اصلا همه شما چیزی جز کدو نیستید. منو بگو که برای اینا آشپزی می کنن. زن آنقدر از شده بود که صدایش مرتب بلند و بلندتر می شود. با فریاد اون اول کتی تبدیل به کدو شد. بعد از اونم تک تک بچه ها به زمین افتادن و تبدیل به کدو شدن. زن که فهمید چرا چنین اتفاقی افتاده ناگهان به خودش اومد و در حالی که دستاشو به هم فشار می داد با خودش گفت چقدر نادوم بودم که به بچه هام گفتم شما چیزی جز کدو نیستید. حالا تلسم شادی من شکسته شده. من فرزندانم رو از دست دادم و خدا رو خشمناک کردم. همینطور هم شد. بچه ها هرگز پیش اون بر نگشتن و زن دوباره تنها شد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها